نان سالهای جوانی اثر هینریش بول ترجمه محمد اسمایل زده با صدای آرمان سلطان تهیه کننده دامون آذری. کاری از گروه فرهنگیه آوانامی با همکاری نشر چشمه فصل اول روزی که هدویک آمد یک روز دوشنبه بود و در این صبح دوشنبه پیش از آنکه خانم صاحبخانه نامه پدرم را از زیر در داخل اتاق بفرستد، دوست داشتم مثل گذشتهها که هنوز در خوابگاه کارآموزی بودم و اغلب این کار را میکردم پتو را روی سرم بکشم. اما صاحبخانم در راه رو صدا زد، از خانه برایتان نامه رسیده. هنگامی که اون نامه ای به سفیدی برف را از زیر در داخل اتاق قلطاند هنوز سایه خاکستری رنگ در آن گسترده بود با وحشت سراسیم از تخت برخاستم چون به جای مهر دایرهای شکل ادارهی پست مهر بیزی شکل پست راه آهن را تشخیص دادم پدرم که از تلگرام متنفر بود در مدت این هفت سالی که در این شهر تنها زندگی می کنم، برایم فقط دوبار بار چنین هایی با مهر پست راه آهن فرستاده بود اولین نامه حاوی خبر مرگ مادر و دومین نامه هم خبر تصادف پدر. زمانی که هر دو پایش شکسته بود. و این هم سومین نامه بود. آن را باز کردم و وقتی شروع به خواندن نمودم، خیالم راحت شد. پدر نوشته بود. فراموش نکن که هدویک، دختر مولر، کسی که تو برایش اتاق تهیه کرده بودی، امروز با قطاری که ساعت و و 11.47 دقیقه وارد می شود به آنجا می آید لطف کن و دنبالش برو حتما یادت نرود که چند شاخ گل هم برایش بخری نسبت به او مهربان و خوش اخلاق باش سعی کن به توانی بفهمی که حال و روز چنین دختری چگونه خواهد بود برای اولین بار تنها به شهر می آید. او خیابان و محله ای را که آن زندگی خواهد کرد نمی شناسد. و برایش بیگانه است راه آهن بزرگ با ازدهام و شلوغیش در حوالی ظهر او را به وحشت خواهد انداخت تصورش را بکن او با 20 سال سن به شهر می آید که معلم شود افسوس که تو دیگر نمی روزهای یک شنبه به دیدنم بیایی حیف از سمیم قلب پدر بعدها اغلب راجبه این فکر می کردم که اگر دنبال هدویک به راه آهن نمی چه می وارد یک زندگی دیگر می شدم درست مثل اینکه آدم اشتباها سوار قطار دیگری شود زندگی که آن وقتها برایم قبل از اینکه هدویک را بشناسم کاملا قابل قبول و قابل تحمل مینمود. در هر حال وقتی در این باره با خودم فکر می کردم چون این تصور می کردم. اما زندگی که مانند قطار طرف دیگر سکو پیش رویم قرار داشت. قطاری که چیزی نمانده بود سوار آن شوم. این زندگی را اکنون در خواب و خیال میبینم. و میدانم این زندگی که آن زمان به نظرم قابل تحمل میرسید. برایم تبدیل به جهنم میگردید. خود را میبینم که در این زندگی بی هدف و سرگردان ازدادم. میبینم که لبخن میزنم. حرف زدنم را میشنویم. درست مثل کسی که در خواب تبسم و حرف زدن برادر دوقلوئی را که هرگز نداشته است ببیند یا بشنود. برادر دوقلوئی که شاید پیش از آن که نطفهش از بین برود برای لحظه‌ای کوتاه به وجود آمده بود. آن زمان از اینکه پدرم نامه را با پست سفارشی فرستاده بود تعجب کردم. هنوز نمیدانستم آیا وقت این را پیدا خواهم کرد که دنبال هدویک به ایستگاه راه آهن بروم یا نه؟ زیرا از وقتی که تخصص تعمیرات و نگهداری ماشین رخشویی اتوماتیک را گرفتم، آخر هفته ها و دو ناآرامی های نااررا میدارم. به ویژه شنبه ها و یک شنبه ها که مردها تعطیلند و با ماشین های لباسشوی ور میروند. چون میخواهند از کیفیت و نحوه کار این وسیله با ارزش و گرانبه که خریده مطمئن شوند من هم پای تلفن مینشینم و منتظر تماسهایی میشونم که اغلب مرا از نقاط و دور افتاده به خود میخواانند به مجرد اینکه وارد این خانه ها می شونم بوی سوختگی کابل ها و یا اتصالی به مشام می رسد یا اینکه متوجه وجود ماشین هایی می شونم که از داخلشان کف صابون مثل فیلم های کارتون خارج می شوند. شوهران مقموم شرمنده و زنان گریانی را می بینم که فراموش کردن از معدود دکمه های روی ماشین یکی را فشار دهند یا اینکه یکی از آنها را دوبار فشار دادهاند آن وقت من از اینکه با توجهی کیف ابزارم را باز کرده و با های آویزان معایب را بررسی می کنم و به آرامی با کلیدها، اتصالها و اهرم ها ور می روهم، لذت می برم. و در حالی که مخلود پودر صابون را مطابق دستورالعمل درست میکنم، بار دیگر نحوه کار با ماشین را با لبخندی دوستانه توضیح می دهم و آن را به کار می اندازم. در حالی که دستهایم را میشویم، شویم معدبانه به اظهار نظرهای غیر کاشناسانه آقایان خانه گوشورا می دهم. که سرمست و مقرورن از اینکه دانش و آگاهی فنیشان جدی گرفته می شود. وقتی رسید ساعتهای کار و میزان کیلومتر پیموده شده را برای امضا از من می گیرند. اغلب با دقت به آن نگاه نمی کنند و من با آرامش و صبر سوار ماشینم میشوم می و به آدرس بعدی برای تعمیر میروم. دوازده ساعت کار، حتی یک شنبه و بعضی اوقات هم یک بعد ملاقات با ولف و اولا در کافهیوس. گروب های یک هم شرکت در مراسم دعای دست جمعی کلیسا که اغلب دیر به آن می رسیدم. و با دل‌هَر از حرکات کشیش می‌فهمیدم که آیا مراسم اولیه شروع شده است یا نه. اگر شروع نشده بود نفس راحتی می‌کشیدم و خسته بر روی نیمکتی می‌افتادم. گاهی وقتا هم خوابم میبرد و تازه وقتی که دستیاران کشیش برای اجرای قسمت پایانی برنامه نیایش زنگ را به صدا در می‌آوردند، از خواب برمی‌خواستم. ساعتهای وجود داشت که از خودم، از کارم از دستهایم متنفر می شدم در این صبح دوشنبه شنبه و کوفته بودم هنوز از روز یک شش آدرس منده بود که باید سرکشی می کردم و صدای صاحب خانم رو در راه رو می شنیدم که پای تلفن می گفت بله پیغام شما رو به او خواهم داد روی تخت خواب نشستم سیگاری کشیدم و به پدران فکر کردم میدیدم که او چگونه غرروپ ها از میان شهر میگذشت تا نامه را به قطاری که ساعت ده در درکناختا توقف می کندند برساند. میدیدم که او از میدان واقع در کنار کلیسا از جلوی خانه مولر از وسط خیابان مملو از درختان خمیده میگذشت و اینکه چگونه به منظور کوتاه کردن راهش قفل در بزرگ دبیرستان را باز میکرد و از میان در ورودی ماشین روی تیر رنگ وارد حیات مدرسه میشد. از کنار قسمت پشتی ساختمان زرد رنگ مدرسه نگاهی به طبقات بالایی جایی که کلاس هشتم کلاس خودش قرار داشت میانداخت. از جلوی درختی که در وسط حیات مدرسه کاشته شده بود و بوی بد ادرار سگ سرایدار را میداد عبور می کرد و می دیدم که چگونه پدر قفل در کوچکی را باز میکرد که هر روز صبح از ساعت پنج دقیقه به 8 الی هشت، برای دانش که با قطار از اطراف اکناف آمده و از ایستگاه راه آهن روبروی مدرسه هجوم میآورند باز میشد. در حالی که هو شاید سرایدار مدرسه هم کنار در می ایستاد تا مراقب باشد که شاگردانی که در شهر زندگی می کردند، دستکی از این در فرودی داخل نشوند. کسانی مثل آفررد گروس پسر رئیس ایستگاه راه آهن که میبایستین ناچارن راه طولانی و کسل کننده دور تا دور ساختمان را پشت سر میگذاشت چون جزء دانش آموزانی که با قطار به آنجا میآمدن نبود تابستانها وقتی آفتاب غروب میکرد خورشید طلایی رنگ بر روی شیشه های براغ و تمیز کلاس های درس مدرسه می‌افتاد. وقتی سال آخر را در که نقطها میگذرانم اغلب با پدرم این راه را می رفتیم. هنگامی که نامه‌ها و یا بسته‌های پستی را برای مادر به قطاری می‌بردیم که از جهت مخالف می‌آمد و ساعت دهانیم در ایستگاه بروخن، جایی که مادر در بیمارستان بستری بود، توقف می‌کرد. پدر اغلب اوقات هنگام بازگشت باز هم همین راه حیات مدرسه را انتخاب می‌کرد. چون معنای آن کوتاهی راه به مدت چهار دقیقه بود. و ما دیگر مجبور نبودیم از پشت آن های زشت و کری عبور کنیم. و دلیل دیگر آن هم این بود که پدر می بایستی غالبا کتاب یا دفاتری را از مدرسه بر می داشت. یادآوری خاطرات غروب روزهای یک شنبه تابستان در دبیرستان در من نوعی سستی ایجاد می کرد. تاریکی خاکستری رنگ راهروها را رو فرا گرفته بود. کلاههایی به شکل پراکنده به گیره های جالباسی جلوی کلاس های مدرسه آویزان بودند زمین با روغن تمیز و براغ شده بود نوشته برونز نقرهای روی تندیس یاد بود برای کشت شدگان جنگ به شکلی مات در کنار ستون چهارگوش و به سفیدی برف که قالبا عکس هیتلر به آن آویزان بود برخ میزد و یقی شانهورست به رنگ قرمز پررنگ در نزدیکی اتاق معلمین می درخشید. یک بار سعی کردم کارنامه محرشده را که روی میز اتاق دبیرها قرار داشت کش بروم و در جیبم بگذارم. اما کارنامه آنقدر محکم و شق و رق بود که وقتی خواستم آن را تا کنم و زیر پیراهنم بگذارم پدرم که کنار کمدی ایستاده بود برگشت و با عصبانیت آن را از دستم گرفت و روی میز برد کرد. او سعی نکرد که آن را صاف کند، به من هم ناسزا نگفت، اما از آن به بعد مجبور بودم که همیشه بیرون داخل راه رو منتظر او بشوم تک و تنها با یقی سرخ رنگ و با لبهای قرمز ایفیگنی که عکس آن کنار کلاس سال آخر دبیرستان آویخته شده بود، و چاره جست تحمل تاریکی خاکستری رنگ راهرو و گاهی هم، نگاه انداختن از میان چشمی به کلاس آخر دبیرستان نداشتم. اما این چشمی هم تنها به دید بهتر در این راهروی تاریک کمک می کرد. یک بار یک آس دل روی زمین راهروی تازه روغن زده پیدا کردم. رنگ آن به سرخی لبهای ایفیگنی و یقی شارن بود. و از لابلای بوی روغن تازه بوی غذای مدرسه را حس کردم. جلوی کلاس های مدرسه به وضوح جای دایرهی شکل پیت های داغ را بر روی کف پوش میدیدم. این بوی سوب و فکر به پیت هایی که دوشن به جلوی کلاس ما گذاشته میشد، گرسنگیم را شدیدتر تر می کرد. چون سرخی یقی شارنهورست قرمزی لبهای ایفیگنی و سرخی آس دل نمی توانستن را کاهش دهند. در راه بازگشت به خانه، از پدر خواهش می‌کردم که به فوندال نانوا هم سری بزنیم. او اسب به خیلی بگوییم و بپرسیم نان یا احتمالا تهمانده شیرینی خاکستری رنگ که لایه مربای آن به سرخی یقه شانهرست بود دارد یا خیر در حالی که از خیابان ساکت و خلوت به خانه میرفتیم من تمام صحبت هایی را که پدر با فوندال باید می کرد برایش میگفتم و تکرار میکردم تا ملاقات ما کاملا اتفاقی جلوه کند این استعداد خیال پردازی برای خود من هم تعجب بود و هرچقدر که به مغازه فوندال نزدیک تر می شدیم، تصورات من هم شکل قوی تری به خود می گرفت و مکالمه غیر واقعی و خیالی که پدر می با فوندال می داشتم بهتر می شد. پدر سرش را تکان می داد. چون پسر فوندال در کلاس او یک دانش آموز تنبل و بد بود. اما وقتی به خانه فوندال می رسیدیم، او با تعمل سر جایش می ایستاد. میدانستم که چقدر برایش سخت بود. اما با این وجود من همچنان اصرار می کردم و او هر بار مثل سروازان فیلم های کمدی یک نیم دور میزد و جلوی در می ایستاد و زنگ در را به صدا در می آورد. یک شنبه شب ساعت ده همیشه این نمایش سامت اجرا می شد. یک نفر در را باز می کرد اما هرگز خود فوندال این کار را نمی کرد. پدر دست باچه می شد و دوچار حیجان می گشت. حتی برای شب بخیر گفتن. پسر فوندال، دختر یا همسرش، هر کسی که در را باز میکرد، در راهروی تاریک رویش را برمیگرداند و داد میزد. پدر: آقای نازم است. پدر بدون آن که حرفی به زبان بیاورد منتظر می ماند در حالی که من هم پشت سر اومی ایستادم و بوی شام آنها را بررسی میکردم. بوی گوشت سرخ شده و یا چربی پخته میآمد. وقتی هم که در زیر زمین باز بود، بوی نان به مشام می رسید. سپس سرکه ای فوندال پیدا میشد. او به مغازه میرفت و نان میآورد. اما آن را بسته بندی نکرده جلوی پدر میگرفت. پدر هم آن را بدون اینکه چیزی بگوید میگرفت. بار اول ما کیف داشتیم و است و پدر نان را زیر بغل زد و به سمت خانه بر افتادیم. در حالی که من هم ساکت کنار او را می رفتم و حالت چهره اش را به دقت ورانداز می کردم. سیمای او همیشه با نشاط و مقرور بود. از صورتش معلوم نبود که تا چه اندازه این کار برایش دشوار است. وقتی میخواستم نان را از دستش بگیرم و در حمد آن به او کمک کنم، سرش را با خوشرویی تکان و بعدها وقتی ما دوباره یک شب شبها به ایسکار راه آهن میرفتیم تا نامه مادر را به قطار برسانیم همیشه مراقب بودم که یک کیف با خودمان بردارم ماهای وجود داشت که خوشحالی هم به خاطر این نان اضافه حتی از روز سهشنبه شروع میشد، تا اینکه یک روز یکشنبه ناگهان خود فوندال در روی ما باز کرد و از حالت چهرش فهمیدم که امروز از نان اضافه خبری نیست چشم های درشت سیاهش جدی و چانه سنگینش مانند یک مجسمه بودند. بدون اینکه لبهایش را تکان دهد گفت من فقط میتوانم نان را در ازای پول بدهم اما یک شب و شب‌ها در ازای پول هم نان نخواهم فروخت او در را جلوی صورتمان محکم به هم زد همان دری که امروز در ورودی کافه اوست که کلوپ جاز محلی در آن جلسه میگذارد من تابلوی قرمز رنگ آن را دیده بودم سیاه سیاه‌پوستان خندانی که لبهایشان را روی دهانه ترومپت‌های طلایی رنگ فشار میدادند. آن موقع چند ثانیهی طول کشید تا به خود آمدیم و من با کیف خالی در دست که چرم آن مانند ساکه خرید رنگ رو رفته بود به خانه برگشتیم سیمای پدر مثل همیشه بود مقرور و شاد او گفت دیروز مجبور شدم به پسرش یک نمره پنج بدهم صدای صاحبخانم را میشنیدم که در آشپزخانه قهوه آسیاب میکرد. میشنیدم که چگونه به آرامی و با لحنی صمیمانه به دختر کوچکش نکاتی را گوشزد میکرد. و من هنوز دوست داشتم به رخت خواب برگردم و پتو را روی سرم بکشم. هنوز به یاد میآورم که چه دوران خوب و خوشی بود. در خوابگاه کارآموزان یاد گرفته بودم طوری لب و دهانم را مظلوم نمایانه کچ کنم که کاپلان مدیر خوابگاه ترتیبی بدهد تا برایم چای و کیسه آب گرم را به رخت خواب بیاورند و وقتی دیگران برای صرف صبحانه پای میرفتند دوباره به خواب میرفتم و تازه وقتی مستخدمه حوالی ساعت یازده برای نظافت خوابگاه میآمد از خواب بر برمیخواستم اسم این مستخدمه ویتسل بود و من از چشمان آبی رنگ و خشن او میترسیدم از دستان شرافتمند و قویاش وقتی ملحفه های رخت خواب را صاف و پتوها را تا می کرد، تخت مرا همیشه مانند تخت یک جزء می مرتب می کرد. می همیشه همان سرکوفتی را که حتی امروز هم به شکل وحشتناک در گوشهایم تنین می اندازد، تکرار می کرد. تو هیچی نخواهی شد. تو هیچی نمی شوی. همدردی او پس از فوت مادرم که همه نسبت به من مهربان شده بودند از همه چیز بدتر بود اما وقتی پس از مرگ مادرم دوباره حرفه محل کارم را تغییر دادم و روزهای زیادی در خوابگاه بی هدف پرسه میزدم تا اینکه کاپلان برایم یک کار تازه پیدا کرد سیب زمینی ها را پوست می کردم یا اینکه جارو به دست در راه روها وقت می گذارندم. در آن روزها احساس همدردی او دوباره از بین رفته بود و هر بار که به من نگاه می کرد دوباره پیش را در مورد آگنده من بر زبان می آورد که تو چیزی نمی شوی. تو هیچ نخواهی شد. من از او وحشت داشتم، زیرا او به نظرم مثل پرندهی می مانست که جیغ زنان در تعقیب شکارش است. گاه در آشپزخانه پناه می گرفتم چون می که خانم فشتر از من محافظت خواهد کرد. من به او در ترشی کلم انداختن کمک می کردم و از این راه پودینگ اضافی گیرم می آمد. را با قسمت درش رنده می کردم و در حین کار از سرودهای زیبا و شیرین دخترانی که در آشپزخانه مشغول به کار بودند چون لالایی سرمزد می شدم. هنگام خواندن ترانه ها می قسمت هایی که به نظر خانم فشتر غیر اخلاقی می رسیدند، مثل و او در تاریکی شب با معشوقش عشق بازی می‌کرد، تنها زیر لب زمزمه می شدند. اما سریتر از آنکه که فکرش رو می‌کردم، از کوه کلم ها کم می و تنها دو روز وحشتناک دیگر باقی می ماند که من می جارو به دست تحت فرمان خانم ویتسل سپری کنم. پس از آن آقای کاپلان برایم کاری پیش ویک ببر پیدا کرد. بعد از آنکه به عنوان کارآموز بانک فروشندگی و نجاری کار کرده بودم حالا به عنوان الکتریکی نزد ویک ببر مشغول کار شدم. تازگیها ها پس از گذشته هفت سال از زمانی که در کوی کارآوزان زندگی میکردم خانم ویتسل را دیدم که در ایستگاه تراموا ایستاده بود. توقف کردم. از ماشینم پیاده شدم و به او پیشنهاد کردم که او را تا شهر برسانم او پیشنهادم را پذیرفت اما موقعی که جلوی خانه از ماشین پیاده می شد با لحنی محبت آمیز گفت از شما متشکرم ما اما ماشین داشتن هنوز به این معنی نیست که کسی چیزی شده باشد پتو را روی سرم نکشیدم و از تصمیم گیری درباره اینکه آیا خانم ویسل حق داشت یا نه که من چیزی شده بودم یا خیر؟ چشموشی کردم چون برایم مهم نبود